در بخش قبلی دیدیم که هانومان میمون سیتا رو پیدا کرد و سخنان دلداری دهنده ای بهش گفت و بعد ازش دور شد و خداحافظی کرد. میمون بزرگ فکر کرد هنوز کارهایی داره که باید پیش از رفتن از جزیره لانکا انجام بده. اینکه معموریت اصلیش رو هنوز انجام نداده کافی نبود. زیرا تنها افرادی کوته فکر هستند که فقط را براشون مشخص کردند انجام میدن و نه حتی ذره بیشتر. خانومان تصمیم گرفت بیشه خوشگذرانی راکشاسا رو ویران کنه و زور دشمن رو امتحان کنه بنابر این خود رو باد کرد و به اندازه اولاسا شد که راکشاسی ها رو ترسوند و تمام بوته ها و درختان رو قطع کرد و بیشهزار را طوری رها کرد و رفت که انگار آتشی به سرعت از اونجا گذشته باشه راکشاساهای گریخته به راوانا گفتند الی حضرت میمون وحشتناکی تمام بیشهزار آشکار رو ویران کرد جز اونجا را سیتا بود نمیدونیم چرا راوانا اینو شنید درجا دستور داد هشتاد هزار کینکارا خدمتکاران دیوها میمون درنده رو بگیرند هرچند اونا قوی بودند اما شمارشان کمکی نکرد زیرا مان گرزی گران در دست داشت و اون رو چنان به کاسه سرشان میگفت که گفتی بادی سهمگین غله های کشتزار رو به زمین میافکنه شمارندکی هم که ماندند با وحشت گریختند و رفتند تا اینکه بدبختی رو به اطلاع پادشاه خود برسوند در این هنگام هانومان معبد راکشاسا رو ویران کرد و همین که پاسداران معبد گریختند هرچه رو مونده بود آتش زد و همه رو کشت. بعد جامبو مالین پسر پراهاستا وزیر راوانا به فرمان راوانا به نبرد او رفت. اما میمون ارجمند او را هم بدون زحمت چندانی کشت. بعد از اون هفت پسر دیگر وزیر رو دیگر با همراهانشون به قربانگاه فرستادند. اما هانومان اونها رو به تمامی از پا در سپس پنج فرمانده لشکر برای سر جای خود نشاندن متجاوز وحشت انگیز پیش اومدند اما میمون کبیر اولی رو چنان فرو کوفت که مرد و دو تای بعدی رو با درختی از ریشه درآورد آورد و کشت و دو نفر آخر رو با کندن ستیق یک کوه و پرتها به اون به سوی اونا به هلاکت رسوند دیگر جز اکشا پسر خود راوانا جنگاوری نموده بود و اون نیز رفت تا میمون رو دستگیر کنه اما فورا کشته شد دیو شاه در منده و نومید پسر دیگرش ایندراجیت را مأمور دستگیری هانمان کرد پیکاری سخت در گرفت که چشم هر بیننده را خیره می کرد. نبرد به شدت ادامه داشت تا اینکه ایندراجیت که در همه فنون جنگی استاد بود تیری را که به ما روزی به پدرش داده بود رها کرد تیر به طور معیوز کننده ای دست و پای میمون را به هم دوخت هانمان از پا درآمد همچون فیلی مست و دیوانه دست و پا میزد و دست و پا بسته روی زمین افتاده بود تا آنکه او را نذر شاه راکشا سا بردند هر دیوهای تشنه انتقام از همه سوهانومان رو شکنجه می کردند اما او نمیتونست از ستایش عظمت شاه دیوها که به نظر می‌آمد بیش از پیش خشمگین شده خودداری کنه. هانومان به راوانا نگاه کرد و حالتی بزرگوارانی به خودش گرفت و در پاسخ این پرسش که چرا دست به جنگ و ویرانی زده گفت من پسر خدای باد وایو هستم. اسم من هانومانه و به خاطر سیتا صد فرسنگ اقیانوس رو تی کردم. او در اینجا یافتم که تو زندانیش کردی. بدان که من پیام آور راما هستم و برای دیدن تو اومدم. اما برای رسیدن به تو ناچار شدم که راه خودم رو با جنگ باز کنم. پیام اینه. تو که میدونی دونی کاری چیه؟ باید سیتا رو به سرور قانونی خودش برگردونی؟ این خواست راماست و کسی نیست که از خواسته او اطاعت نکنه و پشیمون نشه. هنگامی که روانا این سخنان پر از نخوت را شنید از شدت خشم همچون آزرخشی از دل آسمان غید و گفت: او را بکشید او را از اینجا ببرید و بکشید. اما برادرش وی پیشیشانا که کنارش ایستاده و مشاوری دونا و حکیم بود گفت نباید کسی را که به عنوان پیک به جایی میاد کشت این قعددید ای خطی ناپذیر میان دشمنانه پادشاه جواب داد، اون چه میگی درسته در این صورت این کارو بکن چون میمونها به دومشون ارزش زیادی میدن دوم اون رو آتیش بزنید و رهاش کنید تا بره دیپها با این فرمان تک پارچه‌ای از پنبه به دوم هانومان بستند و بر اونها روغن ریختند هنگام ویرانی بیشه آشوکا نگهبانان او را از رویدادهای وحشتناک خبردار کرده بودند وقتی سیتا شنید که هانومان دستگیر شده احساس کرد همه امیدهاش برباد رفته. اما دختر وی پیشانا شتابان با این خبر سر رسید که هانمان قرار آزاد بشه ولی دیوهای خشمگین میخوان دومش رو آتیش بزنن سیتای مهربان با شنیدن این خبر به نیایش به درگاه آگنی خدای آتش پرداخت و از او تمنو کرد که از نیروی خود علیه هانیمان استفاده نکنه بلکه او را سالم رها کنه آگنی دعای او را اجابت کرد و هر چند آنگامی که شعله ها از دوم میمون زبانه میکشیدند ها شادی می میکردند اما او نه احساس درد داشت و نه حتی یک مو از تنش سوخت هانومان که از شکنجه ها جان به در برده بود در حالی که بلانکا مینگریس و نتیجه کارهای را می میکرد به بیرون شهر رفت با خودش گفت بیشه ی آشوکار رو نابود کردم معبد رو فرو ریختم بخشی از سپاه رو از میان بردم و نخبه های ها رو کشتم حالا چه کاری باقی مونده خود دژ این کار رو باید با دومم انجام بدم در لانکا آتش قربانی بر پا خواهم کرد. میمون کبیر وقتی این تصمیم رو گرفت در محتابی ها و ایوان های ها جست و خیز کرد و دو آتش گرفتش رو این ور اون ور چرخوند و همه جا رو با آتش کشید. جنگل خشک زبانه کشید و همه شهر رو آتش فرا گرفت. آنگاه هانمان به سوی دریا دوید دمش رو در میان موجها فرو برد و شعله های آتش را خاموش کرد. همین که آمادهی رفتن شد اول به جایی که سیتا بود رفت و وقتی که دید او سالم و آسوده است از کوهی بالا رفت تا برای پرش بر فراز اقیانوس آماده بشه. هانمان یک بار دیگه به پروازی قدرتمندانه دست زد. هنگامی که به هوا بلند میشد، پایش چنان سخت به قله کوه خورد که قله هم سطح دشت شد و کوه به جهان مردگان فرو رفت. میمونها وقتی هانومان رو دیدند که برکوه فرود میاد با غریب و فریاد شادی گردش اومدند و برای پهلوان آسیب ناپذیر هدایایی از دست چین شده میوه ها آوردند. آنگاه هانومان در میان حلقی میمونها به همه بزرگترها و به جانباوان شاه خیرسات تعظیم کرد و داستان پهلوانی را آغاز کرد. آنگادا صلاح در اون دید که تواناترین میمون در میان میمونها سیتا رو باز آوره اما حانومان به آنها گفت که این کار شایسته نیست زیرا خودش پیشنهاد کرده تا سیتا رو بر پشت بنشونه و بیاره اما سیتا نپذیرفته تنها راما باید به او دست بزنه و تنها راما باید او رو نجات بده جانباوان با نقشه آنگادا موافق نبود و گفت که وظیفه اونا تنها اینه که بقیه کار رو به راما ب میمون با شنیدن این فرمان مشتاقانه رسپار کوه پراش شدند و در مسیر خود در گدارهای پرزنبور مشهور به مادهووانا توقف کردند. در اونجا اونا به عنوان مهمان داد هیموکه ها اموی سوگریوا موفقیت حانومان رو در انجام کارهاش جشن گرفتند. اما افسوس که بیش از حد خوشگذرانی کردند، گله های میمون سرمست از اصل دلپذیر مستانه از درختی به درختی پریدند شاخه ها رو شکستند علف رو کندند و خرابی های وحشتناک به آوردند نگهبانان گدارها هراسان حراسان گریختند و دادهیموکه های بیچاره که آنگادای مست به نهدی گدساخانه او را رو عقب رونده بود از هر کوششی برای مهار کردن خیشاوندان پردردسر خودش نومید شد و فورا نزده برادرزادش داد هیموکه ها در آنجا داستان غمانگیز ویرانی ماد را برای سوگریوا بازگو کرد. لاکشامانا هنگامی که شنید میمون به دیدار سوگریوا اومده و خبرهای آورده بیدرنگ خودش رو به اونجا رسوند و پرسید که او برای چی اومده؟ سوگریوا فریاد زد. افسوس که هیچ خبری از سیتا نی و تنها خبر نابودی زنبورهای ارزشمندش را آورده. با این همه یقین دارم که این جشن وحشیانه قبیله ما که سبب غصه و دلتنگی اموی من شده، نشانه هایی فرخونده از نتیجه انجام وظیفهشون در برداره. سپس رو به داد ها ادامه داد، هرچه زودتر برگرد و سپاه میمون ها رو به سریع وجه ممکن به اینجا بیار. داد هیموکه های دل راه اومده رو برگشت و دستور سوگریوا رو به آنگاداد داد، ان گادوک اینکندگی از مستی در آمده و هوشیار شده بود شتابان پذیروی فرمانبرداری شد و تمامی سپاه بزرگ با جسوخیزهای بسیار بلند شتافتند تا به کوه پراش راوانا رسیدند از میان سپاه گرانی که به دور هم جمع آمده بودند هانمان قدم پیش گذاشت و تا کمر در برابر راما خم شد و بدین قرار سخن گفت راوانا، شاه رکشسوه در جزیره ای به نام لانکا در صد ساحل اقیانوس جنوبی زندگی میکنه. در اونجا در بیشه درختان آشوکا که بخشی از کاخه سیتا رو دیدم که زنده بود و به شما سرور خود فکر میکرد. من او را دلداری دادم و دوستی شما با سوگریوا رو براش گفتم که با شنیدن اون بسیار خوشحال شد. انگشترتون رو بهش دادم و او در عوض این نگین درخشان خانوادگی رو به من داد. او پیام های بهرامیزی برای شما و لکشمانا فرستاد و از من خواست که این سخنان رو براتون تکرار کنم. من تنها یک ماه زنده خواهم بود، راما. بیشتر از اون زنده نمی‌مونم. قسم می‌خورم. پیام او این بود. این هم نگینش. وقتی راما این سخنان رو شنید و به گوهر زیبا نگاه کرد، چهرهی خود را رو به روشنی به خاطر آورد و نتوانست جلوی غم اندوهش رو بگیره. گریه زاری کرد و گفت: سی تا از یک ماه حرف میزنه در حالی که من اگر او رو نبینم دیگه حتی یک لحظه هم نمیتونم زنده بمونم منو به کاخی به برکه او اونجاست نمیتونم صبر کنم به من بگو دل دارم با صدای دلنواز خیش به تو چی گفت خانمان دلش سوخت و تمام احوال رو برای او گفت پیروزی راما بر راوانا راما چون سخنان هانمان را شنید با شعفی فوقلاده اونها رو در قلب خود جای داد و آنگاه رو به سوگریوا گفت بیا همین ساعت سپار بشیم نباید بیشتر از این وقت رو تلف کنیم تنها ترس من این سوگریوان ارجمند اینه که چطور از اقیانوس بگذریم سوگریوا در پاسخ گفت از این بابت بیم به خودت نده زیرا من پلی از این سوبه اون سوی لانکا خواهم ساخت هانمان میتونه از توان دشمن به ما خبر بده و بنابراین من میتونم موفقیت نتیجه عملیات رو پیش بینی کنم سوگریوا فوراً لشکر پرتوان خودش را فرا خوند تا برای پیشرفی آماده بشن و خود راما فرمان حرکت را صادر کرد. گله میمون و خرسها زمین رو چنان پوشانده بود که به نظر میرسید حتی روی ساهی ها و هیمالیا رو نیز پر کرده. شامگاهان وقتی به اقیانوس رسیدند راما به برادرش که کنارش ایستاده بود نگاه کرده گفت در حقیقت غما اندوه من باید کاهش پیدا کنه اما انگار هر لحظه که به پایان دوری خود از سیتا نزدیک میشم بیشتر از پیش غمگین میشم این نسیم رو که از امواج میوزه حس کن شاید او رو نوازش کرده باشه ماه رو بنگر که داره سر میزنه شاید او همین الان داره به اون نگاه میکنه بعد برای به جاوردن نماز سهرگاهی رفت در شهر لانکا راوانا انجمنی از راکشاسا ها گرد آورد و چون بعد از براورد ویرانی وحشتناکی که هانمان به بارا آورده بود افسرده و غمگین بود به اونا چونین گفت این شهر را که من فکر نمی کردم هرگز کسی بتونه فتح کنه یک میمون ساده زیروزه بر کرد و سیتا را یافت حالا از شما میخوام خوب فکر کنید و ببینید چرا چنین شده راهایی رو که میشه از ورود راما به اینجا جلوگیری کرد پیدا کنید زیرا یقینا اون میاد و حتی اقیانوس رو یارای اون نیست که مانعی سر راهش باشه آنگاه راکشساهای پرهیبت شمشیرهای جواهرنشان خود را کشید و در حالی که با نوری خداداد داد به اشکال گوناگون راوانا را رو ستودند و اعمال شکوهمند پیشین او رو بزرگ داشتند وقتی اعتماد به نفس رهبرشان را به او بازگرداندند، شروع به فخر فروشی و, و لاف زدن کردند همین که راما پا بر خاک لانکا بگذارد او را و همچنین برادرش و سوگریوا را با فوج میمونها میکشیم و همه را بر خاک می‌افکنیم حتی هانومان بخت برگشته که این همه اندوه و ماتم برایمان به بار آورده آنقدر زنده نمی ماند که یک بار دیگر سواحل آنسو را ببیند اما وی پیشانا برادر کوچکتر راوانا با ناراحتی فضاینده‌ای به تمام این لاف و ها گوش داد و ناگهان گفت شمشیرهای درخشانتون رو پایین بیارید و همینجا روی زمین دور من بنشینید و با آنچه میگم گوش کنید. خوب میدونید که راما هرگز به ما تادی نکرده. بنابراین اعمال زور برای تصاحب همسرش کاری خطاست. است. دزدیدن زن یک مرد دیگه، تباه کردن نام و حیثیت و زندگی اوه. پس مطمئن باشید دختر جاناکا که اینجا در بند و اسارت ماست، سرنوشت خوبی برامون به بار نخواهد آورد. جمع با شنیدن این سخنان پراکنده شد و وی پیرشونو با این تصور که بر مخاطبان خود تأثیر گذاشته فردای اون روز پیش برادرش رفت و به او گفت های فلکی بر ضد ما گواهی میدن من علامت می میبینم که ما رو به نابودی تهدید میکنند از وقتی که سیتا رو از چنگ شوهرش در آوردی این نشانه ها پیاپی بیشتر شدند راوانا گفت بگذار یک بار دیگه انجمنی برپا کنیم و از برادرش که در پی تباه کردن نقشه هاش بود خشمگین شد بعد در لباس باشگوهش که به خاطر زینت‌های جواهر میدرخشیدند و با گام‌های بلند قاطعانه به مجلس شورا آمد و فرمان داد پراهاستا نگهبانان را احضار کرد و به آنها دستور بده که دائما در برابر حمله دشمن آماده باشند پراهاستا تالار را ترک کرد و رفت تا شهر را از شکست ناگهانی و غافلگیرانه در امان نگهداره کومبها دیو هم که از خواب شش ماهش بیدار شده بود در گرد همایی حضور داشت و وقتی روانا از او پرسید که چه باید کرد فقط خندید که چرا برای کاری که میشد آن را انجام شده به حساب آورد این همه خودشان را به دردسر می اندازند. کنبه ها کارنا گفت: به شما قول میدم بازوی قوی من در جنگی که در پیش توان کافی داره ترسی به دل راه ندید چون راما و برادرش بیشک خواهند مرد راوانا گفت: تردید ندارم که راست میگی. یقینا راما از قدرت من آگاه نیست وگرنه جرعت نمی کرد بیاد. اما ویب آرام و مصمن جواب داد. حواست باشه که راما جنگجوی پرقدرتی و قبلا هم در جنگ خودش رو نشون داده. به شما هشدار میدم که راه که هارا رو دنبال نکنید و جان خودتون رو برای تلاش انتقام گرفتن از دست ندید. این دیراجیت با شنیدن سخنان عموش به نحوی گفت. هرگز فکر نمی کردم که حرفای چنین بوزلانه و ضعیفی از برادر پدرم بشنوم بعد وی پیشانا رو به او کرد و گفت تو یک بچه احمق هستی و حق حضور در این جلسه رو نداری در این هنگام راوانو خشمگین شد و گفت تو مثل ماری هستی در خانه من و حتی بدتر از اون مانند دوست سخن میگی اما دلت با دشمنه هرکس دیگه در حضور من جرأت بر زبان را چنین سخنانی رو به خودش میداد. به حتمی یقین او رو می‌کشتم شرم بر تو که چنین ننگی رو برای خانواده روانا به بار میاری. وی پیشانا با شنیدن این سخنان تند آلود در حالی که اسای قدرت در دست داشت، به همراه چهار راکشاسای دیگر به آسمان پرواز کرد و سخنان جدای آمیز زیر رو بر لب جاری ساخت. هر چند برادر من هستی و میتونی هر چی دلت خواست به من بگی و با آنکه باید به برادر بزرگترم مثل یک پدر احترام بگذارم، اما میگم که تو راه نادرستی می‌ری. وی با این سخنان پرواز کرد و به ساحل آن سوی اقیانوس رسید لشکر میمون با دیدن پنج راکشاسا که در جمعشون فرود آمدند ساح رو برداشتن تا اونا رو بکشند اما وی پیشانو گفت که با هدف سرجویان اومدند و به سمت قرارگاه سوگریوا و میمون سرکرده سر کرده پیش رفت و فورا خودش رو معرفی کرد و گفت که راوانا پادشاه لانکا کارهای ناشایست میکنه و سیتها رو و جاتایا رو کشته من به او هشدار دادم اما او هیچ گوش نکرده و با تندی و خشم با من برخورد کرده سوکریوا اینو شنید به راما گفت من به این راکشاساها اعتماد ندارم اگر راوانا ویب را برای تجسس از مقاصد ما فرستاده باشه چی توصیه من اینه که اونا رو مجازات کنیم اما در این موقع حانومان که گذشت و فداکاری ویب پیر رو دیده و یک بار هم ویب جان او رو نجات داده بود جلو آمد و گفت باید بهش اعتماد کنین. زیرا بیشتر از همه به کنه اندیشه شیطانی برادرش آگاهه. رامای بزرگوار، این رو یقین دارم که او به شایستگی به شما احترام میگذاره و تردید ندارم که وقتی کار راکشاسا رو یکسره کنیم، هیچکس برای جانشینیش شایسته تر از او نیست. راما که خوب به سخنان هانومان گوش داد، بنابر داوری درست خودش دستور داد که کسی رو به عنوان دوست اومده نباید کنار گذاشت و نپذیرفت، حتی اگر نیت پلیدی داشته باشه. چون او نمیتونه به ما آسیبی برسونه و به ما پناه آورده. سپس به پیشانا با فروتنی در برابر راماخم شد و گفت من وطنم، همسر، فرزندان و تعلقاتم رو ترک گفتم. از همه دست کشیدم که دوباره در اینجا اونها رو باز بیابم. بنابراین کاملا در اختیار شما هستم. در این هنگام راما ویبهیشانا را در آغوش گرفت و فوراً به لاکشامانا گفت که او را با آب اقیانوس تبرک بدند سپس از او پرسید که چطور باید از فرسنگ ها راه آبی متروک عبور کنند ویبهیشانا جواب داد به نظر من اگر در برابر خدای اقیانوس به خاک بیفتی او به تو لطف و عنایت خواهد کرد و راه عبور پیدا خواهد شد هنگامی که راما به ساحل اقیانوس رفت راکشاسایی بالای سر سپاه میمونها در آسمان پدیدار شد که شوکا نام داشت. راوانا او رو فرستاده بود تا در میان پیروان راما نفاق و جنگ ایجاد کنه. شوکا از فرصت استفاده کرد و هنگامی که راما در برابر اقیانوس به عبادت پرداخت فرود آمد. سوگریوا وقتی موضوع مأموریت شوکا را فهمید سخت وسوسه شد که او را بکشه. اما به جای اون جواب داد، برگرد و به ارباب تبه کارت بگو که من فریبه هیچ از رنگهای ابلهانی تو را نخواهم خورد من برای رامای بزرگوار سوگند اتحاد و همداستانی یاد کردم و تنها به او وفادار خواهم بود در این هنگام آنگادا به سپاهیانش دستور داد تا شوکای بخت برگشته را بگیرند و او را چنان در بند کنند که یارای حرکت نداشته باشه، اما وقتی جریانات رو برای راما گفتند او دستور داد که راکشاسا رو از بند آزاد کنند ولی رهاش نکنند. سه روز تمام راما کنار ساحل موند و شب رو به نیایش گذروند اما خدای اویانوز چهره نشان نداد. بعد راما خشمگین شد و چشمانش که از شب زنده داری سرخ بود سرختر شد. پس برادرش رو فراخوند و به او فرمان داد لاکشامانا برو و کمان مرا رو با خدنگ های بیار. میخوام اقیانوس رو بخوش کنم تا ببینم ساگارا چه خواهد کرد؟ همین که راما کمان وحشتناک رو کشید و تیرها رو به درون امواج رها کرد، اقیانوس به جوش و خروش آمد و دیوانهوار جوشید. سپس دریای مهیب شکاف برداشت و ساگارا خدای اقیانوس پدیدار شد در حالی که تیرهای راما را در دست خودش بالا گرفته بود. گفت کاری رو که میخوای انجام خواهم داد، نالا رو از جمع ها نزد خود بخان. او پسر ویشوا کارمانه. وقتی که من آبها را آرام کردم، پسر معمار آسمانی پلی به لانکا برای تو خواهد ساخت. در این هنگام ساگارا به زیر موجها فرو رفت و اقیانوس آرام شد و بیشتر از 100 فرسنگ فرو نشست. همین که نالا پل را درست کرد، لشکر پادشاه ها شتابان از آن گذشتند و در ساحل لانکا موضع گرفتند. آنها ابتدا با جمع‌آوری ریشه های فراوان، آب شیرین و میوه های خوشمزی که در آنجا بود غذا تهیه کردند. بعد راما در حالی که صف وسیع سربازان رو سان میدید، دستور داد که به سوی شهر پیشروی کنند. آسمان از فریاد میمون های هیجان زده به لرزه درآمد. وقتی صدای جیغ و فریاد ها به گوش رسید، میمون ها بیشتر به قورش درآمدند. راما فرمان داد شوکا را آزاد کنند تا بتونه رسیدن او را رو به روانا اعلام کنه. شوک به سرعت و پروازکنان وارد کاخ سلطنتی شد و ورود خود را به پادشاه را شاسا خبر داد. وقتی راوانا از ماجرای او مطلع شد، گزارشش را باور نکرد و گفت: برگرد و شارانا را هم با خود ببر تا هر دو با هم خبرهای معقولتری بیارید. هیچ کدوم از مزخرفاتی که گفتی باور نمیکنم؟ بعد شوکا شارانا رو به خود برد تا با هم بالای سر لشکر ها پرواز کردند اما به خاطر اشتیاقی که برای تجسس درباره توان ها داشتند وی پیشانا دستگیرشون کرد دوباره راما فرمان آزادیشون رو داد و به حضور راوانا برگشتند شارانا با او صحبت کرد و گفت هرچه چه شوکا گفته حقیقت داره راما با لشکر بزرگ ها و خیرسا به سوی شهر پیش میاد بیا به بام کاخ بریم تا من اونا رو بهت نشون بدم راوانا که باز هم باور نکرده بود به بالاترین ایوان رفت و از آنجا دید که نیروهای بیشمار راما همچون یک جنگل پاییزی بیانتها جلوی شهر او ایستادند. دو دوپیک شوکا و شارانا حیجان زده سرداری رو در اینجا و رهبری رو در آنجا نشان دادند و نامشون رو گفتند دیوشاه گفت کافیه به نظرم اینطور میاد که شما غرق در تحسین اونا هستید برید گمشید و فریادی از خشم برآورد بعد دستور داد سر و دروغینی از راما حاضر کنند و بعد به دیشه عاشوکا رفت سر دروغین رو به سیتا نشان داد و گفت شوهرت با سپاهش یک شبه در جنگ شکست خوردند این سرش و این هم کمانش که در جنگ به چنگ ما افتاده تاسف خوردن به حالش هیچ فایده ای نداره فقط به من بگو که منو به سروری خیش خواهی گرفت وقتی سیتا این کلمات وحشتناک رو که همچون تیرهای مرگ بودند شنید از هوش رفت اما بعد که به گوش گریست و گفت هرگز از آن تو نخواهم شد اینا به کار ابله حالا که شوهرم رو کشتی منم میخوام بمیرم برو و منو اینجا رها کن تا بمیرم وقتی راکشاسای خشمگین دید که دل سیتا نسبت به او همچون سنگ خارا سخته رفت و وزیرانش رو فراخوند و به اونها دستور داد تا لشکری برای نبرد آماده کنند در این گیرودار ساراما همسر ویپیشانا که نیرنگ پادشاه دیوها رو مشاهده کرده بود به بیشه یاشوکا آمد و سیتای ما تمزده رو دلداری داد و گفت این تنها یه نیرنگ جادویی بود که تو رو به گسستن از سرورت وادار کنه او امیدوار بود که بدین ترتیب بتونه جنگ رو به صورت دیگه ای برگردونه و به راما بگه که تو به همسریش در اومدی و اونو کنار گذاشتی بعد سیتا از راما پرسید آیا نمیتونیم کاری کنیم تا جلوی جنگ رو بگیریم؟ فورا به مجمع برو و ببین آیا موفق شدن راوانا رو وادار کنن که منو برگردونه؟ سارا مایه ارجمند رفت و زود برگشت و گفت افسوس سیتا عزیز خبرهای بدی دارم هر چند مالیاوان توصیه کرده که تو رو برگردونن و هشدار داده که راوانا کاملا در عمل گناه آلود خود غرق شده و همه ی نشانه های پنهان به سرنوشت هراسناک اونا اشاره داره اما قلب شاه چنان سخت شده که از شدت خشم دستور داده نیروها را به دروازه های شهر ببرند. در این میان از اردوگاه راما ویبهیشانا چهار پیرو خود را به صورت پرنده فرستاد تا درباره تدارکات راوانا برای نبرد تجسس کنند. بعد راما تصمیم گرفت شهر را از کوه سوالا بررسی کنه و بنابراین به همراه برادرش ویبهیشانا و سوگریوا به قله رفی سعود کرد. اونو از اونجا سراسر شهر رو زیر نظر گرفتن ها رو دیدند که داشتند به نحو دیوانوار دیواری می ساختن تا از خودشون محافظت کنند اونا شب رو در قله کوه گذروندند و و صبحگهان راوانا رو دیدند که از بالای دروازه شهر داشت نگاه میکرد بعد از سوولا پایین اومدند و روما دستور داد لشکرش را در موازه ای جا بگیرند و شهر رو محاصره کنند بعد آنگادارو فراخوند و به او گفت که میمون ارجمند برو و این خبر رو از من به راوانا دیو ده سر برسون ای راکشاسای تیر بخت من چوب ادالت رو میارم و بیرون دروازه منتظر میمونم اگر همسر منو باز نگردونی جهان را با تیرهای تیز رای خود از وجود راکشاساها پاک میکنم. من وی پیشانا را به جای تو برای فرمان روایی بر کشورت خواهم گماشت تو احمق و گناهکار روزگارت به سر اومده و فرصت اندکی داری؟ راوانا که از لهن پیام راما بیش از حد خشمگین شده و کنترلش را از دست داده بود فرمان داد نیرویی به پیش بفرستند و چون شب در رسید اینجا و آنجا آتش نبرد میان راکشاساها و میمونها که به عنوان دشمن با هم گلاویز شده بودند شعله کشید سپس راما به جایی که نبرد سختتر از همه جریان داشت نگریست و راکشاساها رو وادار به فرار کرد انگدا که در کنار او بود پس از کشمکشی شدید و بیرحمانه بر ایندراجیت پیروز شد اما ایندراجیت نا خود را نامرعی کرد و اندک آنسکوتر گریخت و با هان سلاحی که یک بار هانومان را با آن گرفتار کرده بود به راما و لاکشمانو حمله کرد در این میان راما ده میمون را برای دستگیری پسر راوانا گسیل داشت اما ایندراجیت که همچنان نامرئی بود باران تیر را بر دو پهلوان فرو میبارید راما و لاکشمانا از زخم‌های بیشمار از پای درآمدند و هنگامی که ها گریه و زاری می‌کردند، که قدرت دیوان را داشت و می‌توانست برادرزادش را ببینه، تیری به سوی او افکند و زخمیش کرد. با این وضعیت آن عقب نشینی کرد و برگشت تا پیش پدرش لاف بزنه که دو دشمن بزرگش را کشته. ها همچنان منتظر و نگران بودند. راما به آرامی به و لاکشما را صدا کرد. سوشنا میمون دانا و کاردان آمد و از دو یوه درمان بخش شگفت که در کوهستان های چاندرا و درونا یافت میشد نام برد و هانومان را برای آوردن آنها فرستاد میمونها ها ناگهان گارودای عقاب را دیدند که همچون آتشی شعله در میان آسمان پرواز میکرد گارودا فرود آمد و با راما سخن گفت ای رامای شایسته و شریفتر از همگان که نام و آواز نیز از همه درخشانتره من دوستت هستم و عین جانت هستم و هرچند در جسمت نیستم با بالهایم به اینجا پرواز کردم تا شما هر دو رو نجات بدم و بهبود بخشم از آنجا که ها همیشه در نبرد کار و نیرنگ بازند بنابراین هرگز مثل افراد عادی به اونها اعتماد نکن پرندهٔ درخشان با این سخنان آنان را در آغوش گرفت و بهبود داد صبح روز بعد روانا لشکرهای مختلفش را بازرسی کرد و فهمید که عملیات جنگی چطوری پیشرفته. رفته. این پراهاستا را با چهار وزیر فرستاد. روانا که از هزیمت بیوقفه و شکست حمله های خود خشمگین بود در رأس لشکری پرتوان به میدان آمد. میمون میمونها برای راندن او جلو آمدند، اما حتی همه توانشان در برابر چونان درنده سودی نداشت. وقتی ها دید که سرکردگان میمون پیش از رسیدن به پادشاه دیوان ریشکن و سرنگون میشند رو به برادر گفت برادر جان اجازه بده برم و کار دیو رو بسازم اگر او فورا شکست نخورد اردوگاه ما را زیزه بر میکنه. تردید نداشته باش من به زودی او را سر جاش میشونم. راما با شنیدن سخنان دلیرانی لاکشامانا کاری نمیتونست بکنه این که به او اجازه جنگ بده. رگبار تیر رو بر راوانا فرو بارید اما راوانا به اون که آسیب ببینه تیرها رو به اطراف دفع میکرد و پیاپی جلو می اومد تا اینکه هر دو تن به تن به پیکار پرداختند دیو نیزه پرتاب کرد و لاکشمانا شجاع رو زخمی کرد اما در همین لحظه برادر ارجمند راما با مشت چونان ضربه وحشتناکی بر راوانا کوبید که مدهوش بر زمین افتاد هانومان بر راما پیش دویدند هانومان لاکشامانو رو از جا بلند کرد در حالی که راما دوید و به سرعت دیوشاه رو خل صلاح کرد. راوانو زمان فراغت اندکی براش باقی مونده بود اما همین زمان اندک کافی بود او باز هم تصمیم سخت و تلخی گرفت. هرچند میدونست که نمیتونه دشمنش رو از میان برداره ولی دور دیوارهای شهر میگشت و دستورات سختی میداد که هیچ دشمنی نباید سالم وارد شهر بشه. این تنها فرزند باقی راوانا که پدر رو آزرده و غمگین دید به او قول داد که این بار حتما دشمنانش را سرکوب می سراسر اون شب وی و حانومان گرد میدان جنگ می گشتند تا به انبوه حراسان زخمی ها و سربازان در حال مرگ کمک کنند. جانباوان نیز اونجا افتاده بود و وقتی حانومان به او نزدیک شد گفت بر کوه کایلاسا در هیمالیا چهار گیاه شفابخش را میشناسم هرچه سریعتر برو و اونها رو بیار. خانمان پروازکنان رفت اما هرچه چه کایلاسا رو جستجو کرد نفهمید که اون گیاهان کدوم هستند. سرانجام در اوج ناامیدی کل قله کوه رو کند و با شتاب به لانکا آورد. آنگاه جانباوان گیاهان رو کند و با عطری که از اونها برمیخواست شماره بسیاری از زخمی ها دوباره خوب شدند و به هوش سوگروه گفت دیگه نذاریم وقت تلفش زیرا دشمن ضعیف شده و حراسان از بالای دیوارهای شهر ما رو نگاه میکنه. حالا که شبه بیای دزدانه بریم و لانکا رو آتیش بزنیم میمونها به حرکت در اومدند و آتشگیرانه بر فراز استحکامات دشمن پرتاب کردند و خیلی زود سراسر لانکا در آتش زبانی میکشید. بار دیگر لاکشمانا و ایندراجیت در جنگی خونین و مریبار چهره به چهره شدند. لاکشمانا تیری رو که از ایندیرا گرفته بود در چله شامان نهاد، پاکی و درستی راما را به کمک خوند و خدنگ پردار رو تا پشت گوشش کشید و رها کرد. تیر با صدای رعداسا پرواز کرد و سر ایندراجیت با کلا خودش از تنش جدا شد و به زمین افتاد. راکشاساها که دیدند سر آراسته به جواهر رهبرشان خونی در میان خاک افتاده حراسان به شهر پرواز کردند. راما شادمان از این پیش آمد به برادرش گفت برادرم لاکشامانا کار عظیمی بود حالا که این را کشته شده پیروزی ما حتمیه. راوانای ده که این خبر را شنید هوش از سرش پرید و آرام آرام به هوش آمد و به سوگواری پرداخت. افسوس ای زیباترین جنگ و ماهر ترین ای که تو بر این دیرا چیره شدی، چگونه خد انگل لاکشامانا توانست را به خاک بیفکند؟ بعد کینه وحشتناک در دلش بیدار شد و از بازماندگان سپاه دیوان که انوز روحیه داشتند فرا خوند و به دروازه که راما و لاکشامانا ایستاده بودند رفت، هنگامی که دو دشمن بزرگ در فاصله ای کمتر از آنچه تیر بتواند پرواز کند، همدیگر را دیدند، راوانا که خود را به عرابه چسبانده بود، نیزه‌ای وحشتناک بیرون کشید و آن را به طرف لاکشامانا پرتاب کرد. سلاح در اعماق سینه لاکشامانا جا گرفت. زیرا با تمام نیروی خشم راوانا حرکت کرده بود. هنگامی که راما برادرش را افتاده بر زمین دید، به صدای بلند فریاد زد، "اکنون که برادرم غرق خون است و به سوی مردی راوانا است، پیروزی چه سودی برایم دارد؟ چه ثمره از عمر و چه خوشبختی میماند وقتی لاکشمانا می رود؟ دیگر نه زندگی برایم سود دارد نه سیتا در اینجا میتوان همسری اختیار کرد و در آنجا خیشاوندی پیدا کرد اما هیچ کجا نمیتوانم دوباره برادرم را پیدا کنم سوشنای دانا در میان گرگ وزاری راما دوید و گفت این طور زاری نکن برادرت نمورده لاکشمانا هنوز زنده است بعد به سرعت به هانومان رو کرد و گفت فوراً به کوه اشداهی برو و گیاهی در قله جنوبی رو برایم بیاور در این هنگام هانومان بار دیگر شتاب زده پیش رفت و همچنان با قله کوه برگشت. آنگاه سوشنا گیاهان را از ریشه کند و فشورد و لاکشمانا از بوی شفابخش آنها نجات یافت. اما برادر دلیر راما یک بار دیگر برپا خواست و از زخم و رنج شفا یافت و گفت برادر دیگر برای من محزون و دلگیر نباش. اکنون کار کشتن روانا که زمانش دارد میگذرد تمام کن. در این موقع حکیم بزرگ آگاستیا پدیدار شد و با راما بدین گونه ساخن گفت: از من بشنو که چگونه دشمنت را شکستهی همواره نیایش عادیتیها را برای خورشید بخوان زیرا تمام ترسها را از بین می برد. بر تمام بدی ها چیره می شود و تمام چیزهایی را که فرخنده است به همراه می خورشید در حال برآمدن واسوان آفریننده را نیایش کن. او ستوده تمامی خدایان است که خود بر آنها مسلط است. آگاسییا پس از گفتن این سخنان همانطور که آمده بود ناپدید شد. آنگاه راما به خورشید نگریست، آن نیایش را خواند و در درونش شادی احساس کرد. سه بار آب را مزمزه کرد و پاکیزه و متحر شد و نگاهی به راوانا انداخت و دوباره نبرد را از سر گرفت. راما تیری همچون عفیه جانگداز در چله کمان نهاد و با قدرت راستین خیش چنان را کرد که میتوانست توانست زمین را بشکافد خداوندگار راکشاساها با تمامی توان و حیبتش از عرابه کنده شد و همانطور که ویریترای دیو به آزرخش این را کشته شد مرد و برخاک افتاد. وی پیشانا که شاه دیوها را غرق در خون برخاک می نگریست گفت دریغا برادرم. افسوس که از جنون قدرت به اندرز من گوش ندادی زیرا آنچه گفته بودم اکنون به ترین صورت رخ داده است راما به ویبهیشانای ما زده گفت پهلوان هنگام جنگ یا دشمنانش را میکشد یا به دست آنها کشته می شود دستور داد تا مراسم مرد سوزان روانا برگزار شود سپس ویبهیشانا را به سمت پادشاهی لانکا گماشت و گفت او دوست ماست ما و ما را یاری کرده است. بعد رو به هانمان کرد و چون کوه در کنارش ایستاده بود ادامه داد ای شریف ترین پیروز به داخل شهر برو و پیروزی ما را به همگان اعلام کن. به سیتا بگو که سوگریوا و لاکشامانا به من حالمان خوب است. بگو که من راوانا را کشتم. این کار را بکن و خبرهای شادمانی را برایش ببر و جوابش را برایم بیاور. سیتا را آراستند و با تخت روان به نزد راما به او گفت زیبای من اکنون دشمن به قتل رسیده و تو نجات یافته ای، همه کارهایی که از انسان ساخته است انجام گرفته خشم من پایان یافته ننگ هوانت زدوده شده و من مالک خیش هستم اما اکنون چگونه میتوانم کسی را که سزاوار ملامت است و کسی که کنار راوانا نشسته و چشم‌های بد او بر اش افتاده پذیرا شوم تو روبروی من میستی همچون چراغی روشن در مقابل کسی که از تاریکی طولانی آمده باشد اما اکنون اشتیاقی به تو ندارم دختر جاناکا میتوانی هر جا دوست داری بروی سیتا با آرامی و با صدایی لرزان گفت چرا اینگونه با من سخن میگویی سخنانی که قلب مرا به درد می آورد. مثل اینکه تو یک مرد معمولی و من یک زن معمولی باشم تو باید به من اعتماد داشته باشی اینک قلب من پاک مانده و به هیچ گناهی که به زیان شوهرم باشد دست نزده هم. اما آتش همه چیز را پاک می کند. پس دختر جاناکا با قلبی بی باک به درون آتش رفت و از میان شعله آگنی خدای آتش در حالی که او را در آغوش گرفته بود پدیدار شد و گفت ای راما، همسرت را بپذیر که قلبش پاک و آری از گناه است.» پادشاه بلند آوازه همین که سخنان را شنید بار دیگر به جهان برحمه برگشت در حالی که شیوا پروردگار سه جهان که از نتیجه کارش بسیار شادمان بود به رامای با ایمان چنین گفت راما این که اکنون همه جاودانان را میبینی و همه از کارهای شایسته راضی هستند بیهوده نیست ما میتوانیم یک درخواست تو را اجابت کنیم بگو دلت چه میخواهد راما درخواست کرد همه میمون شجاعی که به هواداری من جنگیدند از سایه های یاما بازگردان و دوباره زنده کن. این دیرا خدایان گفت چنین باد و بیدرنگ میمون های با وفا که هر کدام مشتاق و بیقرار سلام گفتن به پسر رایهو بودند از هر سو سر برآوردند. سپس خدایان عظیمت کردند و به راما فرمان دادند که با همسر دلبند و وفادارش به آیودهیا برگردد. بهاراتا به سرعت اخبار را به همگان رساند تمامی شهروندان آیودهیا و تمامی زنان قصر در حالی که کاوسالیا پیشاپیش آنها بود شادمانه به دیر بهاراتا در نان دیگه راما آمدند وقتی نوای شادمانی آنها با آسمانها برخاست، راما به برادرش بهاراتا نزدیک شد و او تا کمر در برابر برادر خم شده بود سندلهای طلا را جلوی پایش گذاشت و راما مادرش کاوسالیا و همیگه خانواده را در شادمانی دیدار دوبارهشان در آغوش کشید و او سوار بر عرابه سلطنتی به سوی آیودهیا پیش راند راما با سیتای زیبا در کنار خیش به عدالت و درستی بر کشورش فرمان روایی کرد و آینهای قربانی مقدس را به جا آورد کشور از شر تباهی در امان بود هیچ آفت و بلایی نازل نشد و هرگز سالمندان مراسم مرگ جوانانی را برگزار نکردند هر کسی این داستان راما را که والمیکی در روزگاران دور تصنیف کرده است بخواند از گناه رهایی خواهد یافت و خوشبختی و همه نیکی ها برایش پیش خواهد آمد،